خود کتاب وقتی میگیم آوا این کتاب ما به دست شما رسید یعنی چی؟ یعنی مکتوب ما به دست شما رسید پس خود کتاب رو وقتی میگیم مقصود خود کتاب نیست مقصود اسم مفهول کتابه که چی باشه؟ مکتوب یعنی نوشته شده ما از این چیزی که نوشته شد به وسیله ما مثلا به دست شما رسید دیگه پس این در به لغت و ادبیات عرب استعمال دارد که گاه یک لغت رو به معنی اسم مفعول خود لغت رو استعمال میکنه در حالی که مقصود اسم مفعول اون لغت پس نه اسم فاعل اون لغت نه مستر اون لغت سمیه الهن لنه اون معبوده پس از این جهت او را اله نامیدن که یعنی معبود است بر اسم مفعول است یعنی پرستش شده آبد اسم فائله اما این ما هستی که عبادت میکنیم. یعنی فائل عبادت چیه؟ ما این. اسم مفهول عبادت چیه؟ ذات خداست معبود میشه. یعنی پرستش شده ما نه این که او پرستنده ما باشه و تحریر بسیار ای دارد از نظر خود لفظ اینجا و تقریبا جامعه هست یعنی جولیان ایشو میفرماید که نظر تمام مفصلین رو هم ضمناً بیان کرده باشه. من لمد انه هو متحجر تیزات و از این جهت او معبود است به خاطر اون چیزی که تحیر میده در ذات خودش تمام عقل ها را در اسماء خدا انسان ممکنه به معرفتی برساند. در صفات خدا انسان ممکن است به یه معرفتی برسد اما در ذات خدا امکان ندارد که یک کسی بگوید من ذات را یافتم من به ذات رسیدم من ذات رو شناختم امکان ندارد و اگر این باشد از خدای خودش اما از الله خودش خارج میشه یک چیزی شناخته شده ای میشه برای انسان و هر چیزی برای انسان تا اون وقتی ارزش دارد که نشناخته بشه وقتی شناخت ارزش خودش رو از دست میده پس هر چیز هر قدر که چیزه تر باشد و شناخت اون مشکلتر باشد به همون مقدار عظمتش بیشتر است بزرگیش بیشتر است تا برسیم به خدا و ذاتمون که دیگه اصلا عظمت و بزرگیش اندازه نداره. و ظاهران نهو علمون به میگه با ظاهر مطلب هم این به ما نشان میدهد که این الله برای این روی ذات خدا اسم گذاشتن که این به قلبه علم شده خود به خود بر ذات اول به یک معبود به یک فرمندگاری به یک رحمانی به یک رحیمی به یک خلاقی مردم گفتن الله یه باشی باش در اثر کسرت استعمال این لفظ غلبه پیدا کرده بر ذات در قرف مردم اما نه مردم ما قبل از اسلام همین مسئله بوده است. بعد قایه میارن اتفاقا خیلی آیات با عرضش و گران و هم ایشون در این مورد بهش استناد بود وقت کان مستعملن دائرن فلالسوم قبل نزول قرآن میفرماید و این لفظ الله استعمال می شود است از برای خدا و دائر بوده یعنی توی زبان ها و گشته و دائران فلالسون در لسان ها و زبان های لفظ الله برای خدا می گشته همچنان قبل از اینکه حتی قرآن نازل بشه یعرف العرب عرب خود عرب های زمان جایلیت هم این الله رو برای خدا از می شناختن و قبول داشتن بعد میگه خدا این آیات رو که نازل کرد هیچ عربی چه مسلمان چه غیر مسلمان انکار نکرد نگفت این چیزی در بین ما نبوده یکی آیه اینه تعالی و لئن من خلقهم لا الله در سوره زخروف میگه خدا میفرماید و اگر از این مشکین و بدپرستان پرستان بپرسید که کی این بط ها را خلق کرد؟ لَيَقُلُلُنَ الْلَا خودشون میگن الله اینا رو خلق کرد یعنی خودشون این رو رو خالق قبول ندارن. در این حالی که در مقابل بت عبادت و قربانی میکنند ولی الله رو خالقی اینا میشناسند پس اونا هم فاقد معرفت نسبت به الله و لفظ جلاله نبوده